زدن تو زد رو زدنی یه دونه ای. یه دونه زدن اما مستر اگر محدود باشه عمل نمکنه شهزد جواب سوال مقدره پس این شعر چی؟ میگه این شعر از قابل قیاس بگیم نیست ما قیاسیات رو داریم بحث کنیم که بمانه بس امالا حالا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمدلله صلی اللہ و علا نبی نا و آله تاهری خب یه مطلبی که سوال شد و سوال خوبی تو اینجا شده اینه که توی عبارت آخر باب اضافه که و علفن سلم و فل مقصور ان و یا ان حسنان عنوان شد که علف رو شما نگه داری چه مقصور باشه چه منخوص یعنی بگید اصایه قلامایه خب قلامایه مشخصه در حالت رفعی قلامایه در حالت نصبی و جلیچی قلامایه اون اعراب داره اما اصایه چی؟ وق خب اون مضاف به سوی یاء متکلمه آخرش هم علفه مقصور لزامی چی اعرابش تقدیدی چون الف قبول حرکه نمیکرد مضاف هم شده لازم به سوی یا که یا ما قبل خودش رو مشمول میشه عصای در سه حالت یا عصای رعی و عصای مررت تو به عصای مرفوع منصوب مجرور تقدیدی حالا اگر اومد و حذیوی شود در مقصور یعنی شد اصایه سبق و حویه. اینجا چی؟ اینجا هم باز نسبش چیه؟ تقدیریه رفعش تقدیریه چون مضافه به سوریاه متکلمه اونها چطور در صورتی که الف باشه بقیه عرب ها میگن اعراب تقدیریه در قول خوزایل هم باز اعراب چیه؟ تقدیریه اعراب یعنی سبقو هویه یا مثلا بگیم حازا هویه خبر مشخصه؟ مجرورم بشه همینه مجرورم بشه باز جلش دقیقا مثل مطلب بعدی که آقای منلا جلال یه بابی باز کرد به عنوان بابه اسمای ستهی که اضافه بشن گفت اگر اب اخ اضافه بشن و هموهن اعرابشون مثل اعراب کلمه صحیحیه که اضافه شده باشه تقدیریه مثل غلامی عبی اخی بعد گفت مبرد گفته چی؟ عبیه گفته شده مبرد هم که باز عبیه درست کرد باز همچیه؟ تقدیریه اعراب مشخصه؟ فقط چیکار کرد؟ واب رو برگردون واب رو برگردون قلب به یا کرد یا رو در یا ادغام به یه شعر هم کرد و ما هم جوابش دادیم که احتمال داری که جمع ابین عب باشه و اضافه شد یا مثلا کلمه بعدی گفتش کلمه فم رو کلمه فم رو اگر ما اضافه کنیم به سوی یا بگیم چی فمی اعرابش چیه تقدیریه گفتین کمه کمه علت کم بودنش رو هم گفتیم گفتیم کلمه فم در اصلش چی بوده؟ فو هون به اینکه جمع شده چی؟ افوا فو هاش افتاده چون ها حرف خفیفه از آخر افتاده شده فو باید تنویم بهش بدیم یا نه؟ خب اسمه دیگه باید تنویم بدیم میگیم فو هون و اگر ما تنویم بدیم واب حرکه پیدا میکنه و ما قبلش هم کیه؟ مفتوحه قلب به چی میشه علف میشه و علف به ارتقا ساکن و اینو با تنوین میوفته اون موقع ما کلمه موردمون یه دونه حرف باقی داره یه فا یعنی اعرابش میشه اعراب عدن میشه یه فا داره اون موقع و یه تنوین و به خاطر اینکه کلمه مورد با یه فا و یه تنوین نباشه یه حرفی نشه ما چکارش کردیم ما رو تبدیل به میم کردیم تا اینکه قلب به علف نشه بتونیم بگیم فمون فمن, فمن فنه. در موقع که اضافه می کنیم این ضرورت دیگه نیست در موقع اضافه کردن فاو آش می افته فاو اضافه می شه به سوی یا میشه شه فاوی دیگه این خصوصیت وجود نداره که واب به الف بشه و الف به ارتقال ساکنه می بلکه اینجا واب و یا توی کلمه جمع میشه شه سابقشون ساکن واب قلبه به یا در یا ادغام میشه میشه چی؟ فیه بعد به مناسبت یا مغربش هم کس میشه فیه حالا اگر فیه شد ها هم گفتم هازا فیه این دهان من است رعی تا فیه زرب تا باز اعرابش چیه؟ اعرابه؟ تقدیریست باز اعرابش اعرابه؟ تقدیریست پس در هر صورت مضاف به سوریه های متکلم مفرد اعرابش چیه؟ تقدیریست اومدیم سر مصدر گفتیم به فعل هر مصدره الحق فعل عمل مضافا و مجلدا ما ما و معا امکان فعل معما معا و معا معا که محله له بده اسم مصدرن عملون بعد گفتیم فعل با ان در جایی که ماضی و مستقبل باشه تقدیر میشه فعل با ما در جایی که زمان زمان حال باشه مستر ما زمانش زمان حال باشه اونجا ما تبدیل میگید گفت به خلاف المزمره نهو زربوکه المسیعه حسنان و هوه المحسنه قبیهان گفیم هوه که بر میگرده به زربوکه و میخواد عمل کنه در المحسنه و نسبش بده این چیه؟ ضعیفه. این غلط هست درست نیست یعنی این کلام عربی نیست کدوم قسمتش عربی نیست؟ و اگر بخواد عربی بشه چی؟ باید خود لفظه مستره بیاریم بگیم وزر بکر محسنه چی؟ ول محدود به خلاف محدود نحوه عجبت و من ضربته که زیدن الان ضربت اضافه شده به فایلش کاف زیدن چیه؟ مفعولشه من ضربته که زیدن اینجا مصدر اضافه شده به فاعلش و مفعول برداشته اما مصداری که محدود با تا اومده این چیه این درست نیست چرا چون مفرد تسنیه جمع از خصوصیات اسم شباهت به فعل رو چیکار میکنه از بین میبره لذا دیگه مصدر در این صورت عمل نمیکنه عجب تو منزرت که البته این برخلاف مصادریه که خودشون اینطوری هستند ها یعنی مثلا کلماتی مثل رحمت رقبت رحبت که اینا خودشون چی دارن؟ تا دارن اینا دیگه مستر محدود به حساب نمیان یا کلمه مثل اقامت ها؟ مثلا عجب تو من اقامته که زیدن درسته یعنی از ایستادن تو ایستاندن تو کی؟ زیدن نه این که تا داشته باشه تا داشته باشه و اون تا مستر ما رو کار کنه؟ ایش کنه یادون باشه گفتن در مسادری مثل اقامت رحمت مرله شدنش به چیه؟ به صفته یعنی میگیم رحمتن واحدتن اقامتن واحدتن و شزه جواب سوال مقدر پس این شعر رو چی میگیم؟ این شعر قیاسی نیست سماییه یوهایی بهی الجلد و و حازمان به ضربت کفیه الملا نفس را جبن یوهایی یعنی یوهی یوهی یعنی چی زنده میکنه یوهی بهی متعلق به یوهی است و هاش میخوره به ما یعنی آب یعنی زنده میکنه با اون آب بهی با اون آب زنده می کنند کی الجلد جلد یعنی قهرمان البته کدوم جلد الضی جلد فاعل یوهای است الضی صفت جلد است الضی هو حازمان جلدی که او دوراندیش است هو حازمان صله الضی صهم آیدش میگه زنده می کند با این آب قهرمانی که دورندیش است زنده می کند چی؟ نفس راکبه مفعول یوهیست جان یک این رو رو سواری رو میگه سواری در بیابان تشنه بود یک پهلوان و جوان مردی آبی رو که میخواست با او وضو بگیره این آب رو داد به کی به این شطرسوار خورد و خودش به جای وضو کرد دیمون کرد خود میشه انجام داریم نَب سراکه زنده می کند جان یک راکه رو به چی به زربته به زربت متعلق است به یوهایی به زدن به یک بار زدن کفای کفای فایل ضربه است ضربه اضافه شده به کفای ال ملا یعنی ال ارز از تراب مفعول ضربه است با زدن دو کف دستش یک مرتبه بر روی خاک یعنی چی؟ یعنی با تیمون کردن کنایه از تیمبن. این به ضربه و بهی جفتش متعلق به کیه؟ یوهایی دو تا حرف جر به یک شکل در صورتی متعلق به یه دونه متعلق خواهند شد که به یک معنا بگید نباشد الان یوهایی بهی اون بای اول بای استعانته یعنی با آب این کار رو میکنه مثل کتب تو بلغلم بای دوم، بای چیه سببیته با آب به چه سبب این کار رو میکنه به سبب زدن دو دستش بر روی قاک دوتا به یک معنا و به یک شکل دو حرف جر به یک فعل متعلق بگید به ضربت کفایی هلملا نفس که میگه این شهر شازه است قابل ریاست نیست ول محدود ول مجموعه به خلاف مستری که جمعه و خب وقتی که محدود یکی رو دلالت کنه نمیشه جمع هم باشه نمیشه تصنیه هم که جز باز از خصوصیات چیه اسمه لذا تسنیه هم هست چرا چون تصنیه و جمع از خصوصیات اسمیست وله مجموعه و شزده. این و چیه؟ جواهو سوال مقدم میگه خب تو گفتی که جمع باشه عمل نمیکنه میگه بله الان میگیم میگه بچه اینجا عمل کرده میگه اینجا که عمل کرده قیاسی نیست مستر, مستر میمی مستر میمی که یکی از سه قسم اسم مستره است مستر میمی عین خود مستر چی کار میکنه؟ عمل میکنه و شرایط شد این خود مستر اینجا توی این نگاه کنید ترکتوهو به ملاحسل بغره اولادها ترکتوهو یعنی چی؟ ولش کردم او رو باقی گذاشتم او را ترکتو فایل و فایل ها مفعولش به ملاحسل بغر ملاحس جمع ملحس مصدر میلیست یعنی لیسیدن بقر گابان وحشی اسم جنس جنب است. مفردش چیه؟ بقره مثل کلمه و کلمه اولادها اولادها مفعول الملاحظه میگه باقی گذاشتم فلانی رو ولش کردم در جایی که گاوان وحشی اولاد خودشون رو دارن ها معمولا جای نگهداری اولادشون رو در اول زاییدن اینها جای خیلی دور از بشری رو انتخاب میکردن گاوان و محشون می من در بیابان اونجا که عرب نیب اندازه تنها و تنها چی کارش کردم؟ بلشتر. به ملاحس البغره یعنی ترکت هون باقی گذاشتم اون را به ملاحس البغره در نیسیدن بغر اولادشون الان ملاحس اضافه شده به البقر فائلش اولادها چیه؟ البغر هم گفتم چون اسم جنس جمعیه هابش برگشته ملاحظ بغره اولادها چون در معنی جمع. به ملاحظ متعلق به ترکتوست شاهد سر کدومه اینکه ملحس که اسم مستر است می مینیست و مانند خود مستر عمل میکنه و هیچ شرطی ندارد این خود مستر جمع بسته شده و تونسته چکار کنه عمل کنه میگه این شازه حاول غیراز اگر میخواست غیرازی باشه باید اینجا چی میگفت این یا این عبارت میگفت چی ها. به مل حاصل بقره اولا در ولی اسم مصدرن عملون و برای اسم مستر هم عمل است یعنی یه نوع عمل است دیگه نگفته در مورد خود مستر گفت چی به فعلهی المسدره الحق فعل عمل در همه عمل اما به اسم مستر که میرسه میگه چی؟ به اسم مستر این؟ عملون. برای اسم مستر هم یه نوع عمل است. باید, باید بگردیم ببینیم کدوم که بعد مولا جلال اینو توضیح میده اسم مستر چیه؟ اولا اسم مستر سه جوره اسم مستر چند قسمه؟ سه قسمه یک اسم مستری که علمه که یاد میگیرین تو سی یک هم خوندینش اسم مستری که چیه؟ علمه دو اسم مستری که مستر میمیه آه اسم مستر میمی در واقع که ما بشه میگه مستر میمی سه نه علم هست و نه میمی مثل مثلا قصف وضوع نه علمه مثل فجاره و هماده که تو سیوتی یک ها و نه بگید میمیه مثل چی؟ مذرب و مقتل بلکه هیچ کدوم از این دوتا نیست مثل قسل و وضوع و عطا مثلا لا یکونو و علمه ولا میمیه سه قسم اون قسم وسطیش کدومه؟ اونی که میمیه اون بدون قید شرط عمل میکنه الان گفتم توی ملاحظ و غره اولاد اون به این خود مستره لذا به این اسم به این مستر میمی به جایی که بگن اسم مستر میمی خیلی مقام میگن چی؟ مستر میمی یعنی چون اصلا هیچ فرقی با مستر بگید نداره اون دوتای دیگه قسم اولی هم که علمه 100 درصد عمل نمیکنه چرا؟ چون علمیت از خصوصیات اسم اصلا اجازه عمل بهش نمیده. مثل زید شده دیگه. اونم 100 درصد عمل نمیکنه. پس یکی 100 درصد عمل میکنه، یکی 100 درصد عمل نمیکنه. اون آخری هم اختلافیه، قایم بسه. در بچا پس بنابراین اسم مستر چند قسم شد؟ سه قسم. پس حق باشه آقای ابن مالک بگه چی؟ اسم مصدر عملان. میگه و اسم مستر لعصم مسترین میگه وحوبل اسم و دال و اون حدس اون اسمیست که دلالت میکند بر چی؟ بر حدس دلالت میکند بر معنای مسترین غیر جاری علال فعل اما مستر بر قیاس فعل خودش بگید نمیمه بر شکل خودش وارد نشده مثل مثلا فرض کنید که اتا فیل مازی مسترش میشه چی؟ اعتاق اسم مسترش میشه چی؟ اتا اتاق مثل مثلا توزه مسترش میشه چی؟ توزه اسم مسترش شده چی؟ وضو مثل تکلم اسم مسترش محده چی؟ کلام عجابه اسم مسترش اومده چی؟ جواب اقتصله اسم مسترش اومده چی؟ قصر اطاعه اطاعه اسم مسترش اومده چی؟ طاعتون که دو قرآن هم داریم طاعتون یعنی اطاعت کردن دلالت بر حدث میکنه اما جاریه بر فعل خودش بگید نیست تبقیه فعل خودش نیمد حالا اون تقصیر میکنه من برای خاطر این که ایشون یه مقدار مبهم گفته اینجا رو اسم مستر رو یه عبارتی بهتون میگن این رو بنویسید ول مرادو به اسم المستره ول مرادو به اسم المستره ما سا والمستره ما سا والمستره فه دلالت انا مراد از اسم مستر اونیه که با ماستر در معنا چیه یکی مساوی است ماسافل ماستر دلال تعلو منو و خالف او و خالف او اینطور با مستر خودش فرق داره با ماستر خود فرق و خالف او به خلاف بهی لفظان و تقدیران و خالف او به خلاف بهی لفظان و تقدیران من بعض ما فی فیلهی من بعض ما فی فیلهی دونت تحویز دونت تحویز عوض آورده نشده و مخالفت میکنه با فعل خودش در لفظ و تر تقدیر از بعضی از اون چیزایی که تو فیله شد یعنی بعضی چیزها تو فعلش هست تو مستر پیدا نمیشه مثل اختسله قصر همزه و تارو دیگه بگید نداره که تو فعلش هست ولی اقتصال چیه؟ این خود فعلشو داره دونت تحویزه؟ هم نشده مثلا کلمه سقتون مستره آه؟ کلمه اقامتون چیه؟ مستره درسته که این خود فعلشو نداره ولی به جای اون چیزی که از فعل افتاده چی اومده؟ تایی دنیست تحویز اومده جاش که عطا مثل عطا فَإِنَّهُ سَابَا یا فَإِنَّهُ فَا مُصَابِن لِعْتَا این با عطا که مستره چیه؟ مصاویس از جهت معنا فَإِنَّهُ فَا مُصَابِن لِعْتَا معنا و مخالفون لهو به خلوه بهی و مخالف از با او به خالی بودنش مِنَلْهَمْزَتِه الموجودته از همزهی که وجود داره فی فیلهی اون همزه رو داره اما عطا دیگه اون همزه رو نداره و حبه خال من ها لفظن و تقدیرن خالیست از این الف لفظا و تقدیرن ولم یعوض انها به شیعه. و چیزی هم عوض آورده نشده از اون بگید بشه چیزی هم مثل اقامه عوض آورده نشده لفظا خالیه تقدیرن هم خالیه لفظا که خالیه شما میبینید تقدیرن چطور؟ مثلا کلمه مثل یادتون باشه توی سرف میر میگفتیم خاتلن یا زاربن یزارب مزاربتن زرابن و زیرابن زراب الان مستره و اون که زراب علف رو چیه؟ نداره زاربه ها؟ ولی این در لفظ نداره در تقدیر داره چرا؟ چون زراب در بعضی از مصدر دیگه چی اومده؟ زراب آمده بیتال آمده همون علفه تبدیل شده به چی؟ به یا چون به خاطر کسره واقع پس اسم مستر اونیه که مثل خود مستر بر معنا کنه اما جاریه بر فعلش نیست لفظن و تقدیرن و بدون تحویز لفظن نیست تقدیرن هم مثل بیتال نباشه که قتال شده که در تقدیر یارو داره و تحویز هم نشده باشه مثل اقامه اینو بهش میگن چی چی؟ اسم مستر البته مطالب دیگری هم اولوش اسم مستر گفتن که دیگه ما اینجا تکرارش نمیکنیم. علا علل حدث غیر جاری علل فعله حالا تقسیم میکنه انکان غیر علم و لا ممیگه اگر علم نباشد میمی هم نباشد ل اسم مصدرن عملون برای اسم مصدر چی است عملیست است عمل میکنه میشه کی عمل میکنه این قسم میشه که عمل میکنه این قسمی که علم نیست و میمی نیست که گفتم اختلافیه ان در نه ول بغدادیین نه نزد ها و نزد ها نزد بصریین عمل نگید نمیکنه ان در کوفیین ول بغدادیین چون بصری معتقدن که این اسم وضع شده برای مصدر مثاله حالت علمی پیدا کرده به این دلیل عمل نمیکنه نه و مثال میزنه نگاه کنید اکفرن بعد رد دل موتنی و بعد عطا که علم عطر رتا آ. اکفرن اینجا کفرن مفعول و مطلق یک جای فعلش نشسته بعد از همزه استفقام یعنی اکفر و کفرن آیا کفر ورزم کفر ورزیدنی؟ یعنی آیا کفر کنم؟ کفران نعمد کنم از کفران یعنی همچه کاری رو بگید نبکنم میگه ممزه همزه استفان کفران مستر جای فهلش نشسته اکفرو مثل سغیر بعد رد دل موت انی بعد متعلق به کفران اضافه شده به رد رد مستر اضافه شده به مفعولش یعنی بعد رد دکر حل موت انی رد اضافه شده به مفعولش با حالش شده انی متعلق برد میگه آیا من کفران نعمت کنم بعد از اینکه تو چیه مرگ رو من یکی رو کشته بودم قرار بود من رو چکار کنن قصاص کنن در مقابلش تو مرگ رو از من چکار کردی یعفت کردی نگذاشتی منو بکشم. بکشن و بعد هم و بعد عطای که علمه عطر غطاها و بعد هم ست تا شطور درسته حسابی هم به من چکار کردی عطا کردی و بعده عطفه از بجای قبل عطای که شاهد مثال ماز عطا اسم مصدره دیگه اضافه شده به فایلش عطای که اولش حد شده که گیرنده بوده یعنی بعد عطای ای که ای ایایه بعد از این که دادی تو به من علمه عطا این صد شطوره چرنده را عرطا این اونایی که میتونن بچنم بیابور رو شدن سفت علمه هده هست است هده هم ثانی عطایک هست میگه اینجا عمل کرده این رو آقایون کوفی ها قبول کردن و آقایون بغدادی ها عمل قبول کردن اما بسریگین این قبول ندارن اینجا موال شاز میدونن یا میگن عطا اینجا مخفف اعتا است یعنی بعد اعتایک هست علمه هده هده یعنی توجیهش میکنن تا این که بگن این اسم مستری که علم و نیست. عمل این كان علما حالا رفتیم رو قسمی چند دوم, دوم. این كان علما اگر علم باشه مثل سبحانه که علم است برای تسبیح و فجاره که علم است برای چی فجره یعنی فسخ حماده که علم است برای محمدن او کردن کردند للفجره درست فجاره و حماده لفجره و محمدته اینها هم فلا عمل لهم به اینها هم عمل درشون نیست به اجماع چون علمیت اصلا جلو عمل رو بگیر میگه عملی نداره به اجماع کوفی بصری بغدادی همه میگن عمل نه فلا عمل لهم به حالا اگر میمی باشه چی قسم صرفه او میگن یعنی فإن کان علمن فلا عمل لهم به اجماع فإن فا کنه میمی جن یعنی اولش چی باشه می می باشه فعیل گان می می گن یعنی. اگر می می باشه فکل مستره. یعنی فقهه بک المستر اون مثل خود مستره اصلا مش میگن چی مستره می می گویو فکل ما یعنی کوفی و بغدادی و بصری همه چی قبول دارن عملش نه به مثال ا ذنیم ان مصابک رجلا اهده سلام تهییتن ظلمون ظلعی نقل کردن ظلوم هم نقل کردن اسم شخصیه ظلعی تو بوده منادای مرخم کرد از ظلعی من مناداست و همزم سینی دار اگه بخونیم از ظلعی من میشه چی؟ لغت من ینتظر مثل افاتمه محلن بعضها اگه بخونیم از ولای ما میشه لغت منلا میگه از ولای ما آهای زلایم ای خانم زلایم ان مصاب تکون یعنی ان اسابت تکون این که شما مصیبت بزنید اسابت تکون رجلن گفت مفعول فاعلشه رجلن چیه مفعولشه ان اسابت تکون رجلن که این صفتو داره عهد سلامه اهدافاف زمینره ر جفت آعدش تحی... از سلام مفولش. این جمله بعد از جه سفتش جمله بعد از نکرسه. این که شما مصیبت بزنید. مصیبت کنید مردی را که به شما سلام کرده اونم سلام کرده چی؟ تهیت مباب تهییت م بااب خوش آمدگویی. تهیتتا مفول و اهدام. و اهدا. ان مسابقا؟ مسابقا اسم نه خبرش چیه؟ زمن؟ که شما. عمل کرده این مستر انگار گفته این نه اصابت کن نقطه سر خط حالا مستر اگر اضافه بشه که قسم اکثر بود چجوریه میگه و بعد جره لذی و زیفله کم میل به نسکن او برف عمله و گوش کن و بعد. واب وابه عاطفه جمله را عطف میکنه به جمله امری قبل که الحق باشه به فعل حل مستره الحق حالا و بعد از حل لذی میگه و بعد از جر دادن مستر اون جر هو او میخوره به مستر بعد از جردادن مستر ال لذی چیزی را اضیف فله چیزی را که مصدر اضافه شده است به سوی او یعنی مثلا ان مسابقه مساب اضافه شده به کم کم رو چکار کرده جر داده کم شده مجرور حالا نگاه کن اگه این کم فاعل بعدش چی بیاد مفعول اگر این کم مفعول بعدش ممکنه چی بیاد فاعل میگه و بعد جره لذی او زیفله کم میل تکمیل کن به نسب او برف این عمله عمل مستر تکمیل میشه تکمیلش میکنی با نسب یا با رف بعد متعلق است به کم مل. اضافه شده به جر جرم اضافه شده به هو جر مستر اضافه شده به فایلش اون الذی چیه؟ مفعول جره یعنی جردادن مستر چیزی را خود همین تیکهه شاید مثال برای عبارت هم چیه هست اولا جر اضافه شده به فایلش و الازی چیه مفهولش یعنی خودش شاید مثال هم در متن خودش داره جرده لازی اوزیفه لح اوزیفه فیلم زمیر زمیر مستر نائبش ولهو یعنی الیه هلان به معنای لاست متعلق است به اوزیفه هاش آید سره هم و های بعد از چیزی که اضافه شده بود کمل کمل فیل و فایل به او برفت با نسب دادن یا با رفت دادن نسب و انداخته جلو چرا؟ چون مستر اضافه بشه به فایلش بعد بگی مفعولش بیاد خیلی خیلی زیاده مثل این نمو سابه کن بعد اطای کرد که اضافه شده بود به فایلش به او برفت این به جای به تکمیل کن با نصب یا بارد این رفع و نصب ممکنه که معنای اسمی ازشون اراده بشه یعنی با یک رفع یا یک نصب منظور از رفع و نصب هم مستر به معنای چی باشه اسم مفعول باشه یعنی مثل هازا خلق الله هازا خلق الله این یعنی چی؟ یعنی هازا مخلوق الله دیگه دو قرآن داریم اینجا به نصب او به رفع یعنی به مرفوع او به منصوب ها؟ یعنی تکمیل به منصوب او به مرفوع عمل با یک منصوب یا یک مرفوع عملشو چکار کن تکمیل کن رفع و نصب به معنای اسم مفعول و اسم ممکنه هم هست خود معنای مصدری مورد نظر باشه معنا موقعی میشه تکمیل کن با نصب دادن یا با رفع دادن چی رو عملش کرد کردید یا نه مستر اگر به معنای منصوب و مرفوع باشه میشه تکمیل کن با منصوب یا با مرفوعی عملش را یا تکمیل کن با نصب دادن یا رفت دادن عملش را کمل به نصب او به عمله او عمله مفعول کمله است او اینجا برای تقسیم ها نه اینکه ما شک داریم منصوب بگیم یا یعنی دو جوره یا با نصب دادن اگر اضافه شده به فایلش یا با رفع دادن اگر اضافه شده به مفعولش او برای تقسیم بیایید ببینیم و بعد از جره هی مستره مصدره معموله هو. ببینید نمیگه که مفعوله او چرا چون مصدر ممکنه جر بده به فایلش ممکنه جر بده به مفعولش ممکنه جر بده به نائب فاعلش حالا میرسیم لذا گفتیم معمول بعد از اینکه جر داد به معمولش الی وظیفه اون معمولی که مستر بهش اضافه شده کم به نصب این عمله بود با یک منصوب عملش رو چکار کن؟ تکمیل کن این قضیفه بر فایله اگر مستر ما اضافه شده باشه به سوی چی؟ فایل و حوال اکثر و این هم خیلی خیلی زیاده اکثر است از جهت استعمال چرا؟ چون اولا فایل متصل شده به آملش یعنی مستر اضافه شد به فایلش فایل جلوتر اومده متصل هم شده. آه؟ همونطور که که چیه؟ از مفعول خودش چیه جلو بیفته فاعل جلوتر از مفعول باشه خب میشه متصل اومده و اول اکثر که مثال نگاه کنید من من او ذیکنن هوغن شاینون منو مفعول داده شاینون چیه یعنی قنی زشت من یعنی معقول جعل ندادن میگه محروم کردنه ندادنه زیغنن زیغنن یعنی چی؟ ساهد قناع صرفت آدم صرفتمن من کنه نده حقوق هم حقوقی را حق دیگران نما میگه حق حقوق خدا و دیگران نه یک آدمی که دستش بازه نده ها. این چیه؟ قفیده سشون یک کسی بتوانه ولی یک ندگرده خودش رفت ندگرده الان منه مسته اضافه شده به نه که چیه پاهه بشه و اون حقوقاً چیه مبخونشه کمبن به نصف عمله نصف کرده اون منم خابهش یه خیلی همه توی این صفحه میرید این نمازه ها شده بعد کرد حلیه عظم اون کمبن بود یا این اوزی فعلا اگر اضافه شده باشه به سوی مخبول میگه بخونه کسی این که اضافه شده باشه به مخبول و شما بعدش پایلش رو بیارید این چیه؟ زیاده اما اندن یوز کرده به فاعله. البته بشرت این که پایلش ذکر بگید نشد درسته که اضافه شده به مخبول باکر این اوزی فعلا مخبول عدل مستث اضافه شد به مفعول كثير است به شدی که فاعل ذکر بشه چون اگه فاعل ذکر بشه مستثزم خطاب هسته دیگه نه چون مفعول بعد متصل شده و مقدم شده فاعلی که جاش مقدم بوده، شده مؤخر میشه میگه فاعل ذکر شده مثل اون مثال بالا فارغش چیه؟ بعد از دل موته انتا. دیگه فارغ نکرده خیلی کسی رو فارغ اگه فارغ زکر نشه نه مثال میگه ممدود نمیشود انسان از, از طلب کردن چی؟ خیر. مندواهای خیر. از طلب کردن خیر دو. حالا طلب کردن چی؟ انسان میگه انسان که با دعا اومده دیگه. الان میتونید بگه مندوا ال خیره ال انسانو. میتونید نه. چون هیچ اشکار با مربوی که نایی از انسان من دعای هی فایل زک این هم قسم کسیر و پس که اضافه بشه به فایل مفهول برد میاد که اضافه بشه به و فایلش چی بشه حضی بشه فایل زک نشه داخلا و اصلا نشه مثل از انسان هم عزمید. قلیران امضا کرد قلیر اگر اضافه بشه به محبوب و فایلش بعدش چیه زج بشه که خلافه نه بود اون عبارت باید من رو و بعض دومت جبوده مقلل زینون بعض یعنی چی؟ بخشش کردن بعض محتلاص زینون چیه؟ میگه بخشش کردن زینت است خیلی خوبه به که دست مجبود بشه مجبود یعنی آخرین موجه انسان اون چی که میشه انسان است موجود. بزن مجبود مجبور. مجبود اونم برای کسی که مقلد است مقلد یعنی چی یعنی بی چیز, چیز فقیر باعث قرارت انسان فقیر مجبود خودش رو یعنی اون چیزی که براش زحمت کشه رو به دست آورد رو دازه خودشون. این اگر بیاد میدونه بده در بعض نومت جبوده اینجا الان بعض نزافه شده مفهول مجبود مورد نیازش مقلن واقعه بشه این چیه؟ میگه هم, هم بشه خوبی و اختصاص داده این مخصوص شعره یعنی در غیر ضرورت یه جایز نیست در غیر ضرورت نمیشه بعد از مخصوص محصوص بیاد ولی مصنف ما برای این بوداره خب کم به او به رقعه این بگیری به شعر نمیدونست مولا جدار و هون هون به شعر و رده. و هر این بعض رد شده حالا ما چجوری میتونی به که بیان یه چیزی مثال بزنیم نصر باشه و بگیم مستر اضافه شده باشه به مفهونش و پاکرش بعد چیم شده باشه میگه و به قولی و رد شده با این آیه شریفه لله علمناس هچونغی منستطاع علیه سمیم لله علمناس جفتش متعلق جمعید. هج کردن خانه خدا هج مستر است اضافه شده به عربه عربه چیه؟ مقبولشه میگه من باقیلشم میگه برای خدا بر همه مردم هست هج کردن خانه خدا هج کردن خانه that car شبه مخمول و مقایلش منسکت بشه قدیده خودتون گفتید قدیده هم در قرآن برقلید زیاد خود نیست این نکته همه نکته دوباره اینه. که اگر شما بیاید من رو فابله هجبگیدین معنای آیه خود نمیشه معنای آیه اینه به حق خدا برورده همه مردم واجب است چی؟ حج کردن کسی که مستدیشون یعنی مستطیعین حج کردنشون برای یعنی شما بیارید اضافه رو کنید و به این شکل معنا کنید معنا برمزهی که همه م...